به نام خداوندی که از او پیدا بگیتی کنم این دهمین ده روایت من از شاهنامه فردوسی بزرگ است که به دست شما میرسد. ای کسانی که آن را گوش میکنید. شاید این روایت زمانی به دست شما میرسد که این راوی را هنگام و فرصت سر آمده باشد اما سپاس خدا را که این روایت باقی است چه راوی هرکه باشد رفتنی است آنچه ماندگار است روایت فردوسی بزرگ است شاهنامه سند افتخار هر ایرانی تبار پند جاودان برای انسان راه رستگاری راهنمای زیستن او به شرف و سربلندی اینک گوش به سپاری و دیگران رانیز به شنیدن و خواندن شاهنامه برانگیزید. این کمترین سپاسگزاری از فردوسی بزرگ و کمترین ادای دین نسبت به ایران زمین است هموطن شما سعید قائم مقامی من همین روایت باعث برایتان گفتم که کیکاووس پس از مرگ کیقباد نخستین پادشاه کیانی بر تخت و تاج ایران دست یافت. پدر در در بستر مرگ او را به بخشش‌دانی و دادگری و پرخیز از آزمندی بیخواد و فراوان پند و اما چون نوبت پادشاهی به کیکاووس رسید، پنده پدر را از یاد برده فریب دیوزاده آواز خان را خورده به مازندران سرزمین دیوان و جادوان لشگر کشید بزرگان ایران و به ویژه زال او را از جنگ با شاه مازندران که پادشاه نیروهای اهریمنی بود بر داشتند با او گفتند کیکاووس نه جمشید با آن همه قدرت و نفریدون با آن همه دانش و افسون و نمنوچه با آن همه دلاوری هرگز به جنگ دیوان مازندران نرفتند اما کیکاووس خود را برتر از پادشاهان پیشین دانست ایران را به میلاد پهلوان سپرده به جنگ با دیوان رفت ایرانیان در آغاز بخش های سرزنین مازندران را قارت گردند و سوزان دارد. اما دیب سفید بر کیکاووس و سپاهش چیرگی یافته به ایران ناوینا و اسیر ساخت. برایتان گفتم رستم دلاور جوان به همراه رخش تیز پایش پس از گذر از راخی بس دشوار، و ستیز با دیوان و جادوان در رندگان و تشنگی و گرمای آفتاب سرانجام خود را به مازندران رسانده به کمک اولاد پخلبانی مازندرانی جایگاه دیب سفید را یافته او را در نبردی خونین از پای درآورد و خون جگرش را در چشمان كیکاووس چكانده بینایی دیدگانش را به او باز در. که کاووس در پی رهایی از بند دیب سفید هفت شبان روز جشن و شادی برپا کرد رانگاه در هشتمین روز به سپاهیانش دستور داد که با باقی ماندی جادوان و دیوان بجنگند و سرزمین جادوان را به قارت و آتش کشند در هشتم نشستند برزین همه جهانجوی و گردنکشان رمه، همه برکشیدن گرزگران پراگنده در شهر مازندران درفتند یک سر به فرمان که چو آتش که برخید زد از خوج نید ز شمشیر تیز آتش از همیشه همه شهر یک سر همی سوخته رکاووز پس از سوختن و بیران کردن بخش های گسترده ای از سرزنین مازندران به سپاهیانش دستور میدهد تا به جنگ پایان دهند تا او به پادشاه مازندران نامهی نوشته او را به تصمیم و سرسپردگی بخاند به لشگر چنین گفت کابوس شا اکنون مکافات کرده گناه سزاوار ایشان به دیشان رسید به کشتن هنی دل بباید چشید به باید یکی مرد باهوش و سنگ کجا بازدان شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران تند دلش دیدار و مغزش دران. بدین رای خوشنود شد گروه بزرگان که بودند با او همان درستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک او که کابوس در نامه خود به شاه مازندران میگوید، تو جزای بدنهادی خود را دید اینک نکت خود را از سر بردار و به نزد من آی و بپذیر که همه ساله به ایران زمین باج و خراج، باج و ساخ بدهید تا اجازه دهم پادشاهی مازندران چون گذشته از آن تو باقشد چون تو توان جنگیدن با رستم را نخواهی داشت. سزای <سؤال> تو دیدی که یستان چکرد ز دیب و ز جادو برآورد گرد کنون شدی آگه از روزگار؟ روان و خیرد بادت همان همانجا بمان حاج مازندران به دین بارگاه های چون که که با جنگ رستم نداری تو داف بده باش ناکام و ناکام ساف اگر گاه مازندران بایدد مگر زین نشان را بخشایدد وگر نه چو ارزنگ و دیب سفید دلت کرد باید جان ناامید کابوس نامی خود را به یکی از دلاوران همراهش به نام فرهاد می سپارد تا آن را در پایتخت پادشاه مازندران به او تصمیم کنند شهری که لقب مردمان آن ساران بود مردمی دلیل و جنگجو به آن زمان شاه فرهاد را گزارنده تیغ پولاد را به دو گفت این نامه پندمند به سوی آن دیو جست زبن. از شاخ بشنید فرهاد گرد زمین را ببوسید و نامه ببود به شهری کجا گرد ساران بودند دلیران و خنجرگزاران بودند بدان شهر بود, مازندران بود. شاه مازندران همانجا دلیران و جنگاوران آبران مازندران چون از آمدن فرستادی از سوی شاه ایران آگاه می شود به تنی چند از پهلوانان سپاهش میگوید امروز باید در برابر فرستاده شاه ایران قدرت خود را به نمایش بگذارید پس پهلوانان مازندران برای نشان دادن زور و قدرت خود هنگام ورود فرهاد با تلخی وی برخورد کرده یکی از آنان دست او را چنان در دست میپشارد که گویی استخان و پیهای دستش شکسته است اما فرهاد آرام در را تحمل کرده رنگ رخسارش به جای می مارد. و چون به کاخ پادشاه مازندران می رسد نامه را به وی داده او را از کشته شدن دیو سفید برزنگ دیو و ساگر دیوان مازندران آگاه می کند چو بشنید که از نزد کابوس شاه فرستاده آمد سواری ز زلشگر تنی چند را برگزید از ایشان هنر خواست کایت پدید، چون اینگو. گفت امروز مردانگی جدا کرد نتواند دیوانگی همه راه و رسم پلنگ آورید، سر هوشمندان به جنگ آورید هذیره شدندش، پر از چین برون، سخنها نرفتی ایچ بر آرزو. یکی دست بگرفت و بفشاف پی و استخانها بیاز آردش نگشتید فرهاد داوود ووزد نیامد او رنگ پیداز در ببردن فرخاد را نزد شاد زکاووز پرسید و از رنج را پس آن ها نامه هات پیش دبی می و مشک بود باخته بدحری چو آگه شد از رستم و کار دی پر از خون شد از چشم و سرپرقری به دل گفت پنهان شود آفتاب شباید شود گاه آرام خواب سر رستم نخواهد جهان آرمید نخواهد شدن نام موناپدید غمی شد ز ارزنگ و دیو سپید که شد کشته کولاد قنبی و بید چنان نامی شاه یک سر بخاند دو دیده به خونه دل در نشان شاه مازندران خشبگین از کشته شدن دیوان در خدمتش پاسخ تندی به کیکاووس نوشته به فرهاد می سپارد منا پایگه زان تو برتر است هزاران هزارم کزون لشگر است زهر زه سو که دارم زی جنگ روی نماند به درون رنگ و بود بیارم کنون لشکری شیر فشت برارم شما را سر از خواب خش ز پیلان جنگی هزار و دویست که بر بارگاه تو یک پیر نیست از ایران برارم یکی تیر خاک بلندی ندانند باز از ماقا چون بشنید هر حادث و داوری بلندی و تندی و گنداودی بکوشید تا پاسخ نامه یافت اینان مرسوی سالار ایران بیامد بگفت آنچه دیده همه همه پردی رازها بردنی چون این گفت او زاسبان آسمان تر است نرای بلندش به در است ز گفتار من سر بپیچید نیز جهان پیش چشمش نیرزد به چیز. مرحاد بازگشت است او از سرکشی پادشاه مازندران میگوید و شاه میدهد که چگونه پهلوانان دربار شاه مازندران انگشتان او را در همفه شدن پس رستم جوان خاشگین به کیکابوس پیشنهاد میکند که این بار او همچن فرستاده سادهی به نزد پادشاه مازندران رود. مرا برد باید سوی او پیام سخون برگوشایم چو تیغ از یا یکی نامه باید چو برنده تیغ پیامی به کردار می شبم چون فرستاده از اوی به گفتار خونم در آرم بچو به پاسخ چونین گفت کابوس شام. از تو فروزت نگین و کلا پیامی کجا تو گذاری دلیر به در دل پیل و چنگال شیر به در نامه دیگری سراسر تهدید برای شاه مازندران می نویسد یا همچون رهی و غلامی به نزد من آی یا من به سوی تو سپاه خواهم کشید. این گفتار نابکار لخوب آید از مردم خوشیار اگر سر کنی این بزونی توهید به فرمان گرایی به سانه رکی وگرنه به جنگ طلشگر کشم ز دریا به دریا سفه برکشم <متصفيق> رستم نامه که کابوس را برداشته به نزد شاه مازندران. می به شاه مازندران خبر می دهند فرستاده دیگری از سوی شاه ایران آمده است. بس با شکوه و خموما با اصلی که چون پیلی میماند. شاه مازندران به پرزول پرزور<td>دین پهلوانانش دستور میدهد چپیره و آماده استقبال از فرستاده ایرانی شوند و او را نیز همچون فرستاده نخوست با فشردن دستش از زور و قدرت خود و شاه مازندران بترساند چون پهلوانان مازندرانی به نزد رستم میرسند رستم با دیدن آنها و برای آن که چشم آنان را بترساند درختی گشن و تنومند را از جاکنده همچون جوبین و نیزهای پیش پای آنان میاندازد و دست دلاورترینشان را چنان میفشارد که حریفش از شدت درد از اسب بر زمین افتد. چو نامه به محرندراور شاه جهانجوی رستم را. به پیمود راه به زیننده رفت گرزگران چو آمد به نزدیک مازندران به شاه آگهی شد که تابوس شاه فرستادی کرد فرستادی چون هزفر در تمندی به فتر آکبر شاست خام به زیرندرش باره ی گامزن یه جیزند پیل است گویی به تر چون بشنید سالار مازندران ز دیوان گزین کرد چندی سران بفرمودشان تا چپیده شدن هزفر <تسجار> را پذیره شد. چو چشم تمتن به دیشان رسید به رهبر درختی گشن شاست و چو جوبین به که در گرفت بماندن لشگر همه زون شگه بینداخت چون نسل ایتان رسید فحاوان بپرسید و گفت و شنید یکی دست بگرفت و بفشاق همی آزمون را بیازادش به حمید رستمه پیمان شده خیره زو چشمان انجمن مرو را در آن خنده بفشورد چند ببردش ز دست و یاب و آورد بشد پوش از آن مرد زور آسمان ز بالای اس اندر آمد ها پهلوان بخت برگشته به نزد شاه مازندران بازگشته به او میگوید که این فرستاده خود پهلوانی است که هیچ کس را یارای رودررویی با او نیست پس شاه مازندران به یکی از پرزورترین مردانش کلاهور دستور میدهد به استقبال فرستادی ایران برود و آبروی پهلوانان مازندران را خریده پنجه های او را در هم بشکند پیش فرستاده شو هنرها پدیدار کن نو به نو چنان کن که گردد رخش پرز شرم به چشمندر آرد ز خشم آب گرد بیامد کلافو چون نرشیر به پیش جهان دیده مرد دلی به پرسی پرسیدنی چون پلنگ دوشم روی و زانپس به داد چنگ بیفشار چنگ سرفراز پیر شد از درد دستش بکردار نی نه پیچید و زود دور داشت به مردی ز خورشید منشور داشت بیفشاز چنگ کلاهور سخت فروری ناخن چوب برگ درم کلاهور با انگشتان شکسته و دست آویخته به نزد شاه مازندران بازگشته به او میگوید تو تاو و قدرت رو روی با ایرانیان را که دلاورانی چون انترستاده دارند ندارد پس بهتر است که باج و خراج خواسته کیکابوس را بپردازیم و مازندران و مردمش را نجات دهیم بلاهور با دست آویخته پی و پوست و ناخن فرو ریخته بیاورد و بنمود و با شاه گفت فرخیشتن ده ندوانه خوب تو را به پرایز جنگ فراخی مکن وقتل خیشتنگ تو را با چونین مردمان کاف نیست اگر گردد به حساب نیست تذیریم و بر شهر مازندران ببخشیم و بر کهتر و مهتران چونین رنج دشوار آسان کنیم به هاید که جان را پراسند خاه مازندران خشمگین رستم را فرا میخواند و به او میگوید راست بگو آیا تو رستم نیستی؟ و رستم به او میگوید من چاکر و خدمت گذار بیش نیستم جایی که رستم است من که باشم وز پس به دو گفت دوستم توی که داری برو بازوی پهلوی چون این پاسخ من چاکرم اگر چاکری را خود اندر خورم کجا او بود من نیایم به کار که او پهلوان است و گرد و سبا بدود آمه پس نام بر نام را پیام جهاندار خود کامران چو بشنید پیغام و نام بخواند دوشم گشت و در وی شگفتی به درستم چونین گفت این جستجوی چه باید همی خیره این گفتگو. گو بگوش که سالار ایران تویی اگر چه دل و چنگ چیراب تویی منم شاه مازندران باصف ها بر او رنگ ذریین و بر سرکلا مرا بی وده خواندن پیش خیش نرسم کیان است و آین بر اندیش و تخت بزرگان موجی که از این برتری خاری آید برون سوی گاهیران به پیچن انان وگرنه زمانت سرارت سنان که گرما سفه من به جنبم تو پیدا نبینی سرت راز تو افتاده ای بی جمان در جمان یکی برگیر و بفکن کمان چون من تنگ روی اندرارم به روی سرای تو را این همه گفتگوی اصلخ شاه مازندران به کیکاوس جنگ است و شمشی است مصوسنم آنکه پیشکش های او را بپذیرد به نسل پادشاهی ایران بازگشته به او میگوید ای جز جنگ با شاه دیوان و جادوبان نگه کرد دوستم به روشند روان به شاخ و سپاه و رد و پهلوان نیامدش با مرز گفتار او سرش تیزتر شد به پیگار او رفت از او جامه و اسب و زر که ننگ آمدش زان كلاخ و كمر که آمد به نزدیک شاهندرون دل کینهدارش پر از جوش خون زه مازندران هرچه دید و شنید همه کرد بر شاه ایران پدید سون پس به دو گفت من هیچ در این رزم دیوان سواران و گردانان انجمن چنان دانی که خوام بازگشت من گشت رستم شاه مازندران بی‌درنگ به سپاهیان خود دستور حرکت داده برابر اردوگاه سپاهیان ایران رزم را آماده می شود کی کاووس نیز به رستم فرمان می‌دهد که پیشا پیش سپاه ایران نبرد را فرماندهی کند توس را جناح راز و گودرز کشباد را فرمانده جناح چپ سپاه کرده خود در قلب سپاه جای میگیرد دو سپاه در برابر هم نیستاده گلیری از جویان مازندران به نام جویان به دستور پادشاه مازندران به میدان جنگ آمده حریف و هماورد میتلمد دی آنچنان قبیل پنجه و سه که هیچیک از دلاوران ایران را جرأت جنگیدن با او پس رستم از که کابوس اجازه نبه میخواهد یکی نامداریز مازندران به گردن برابرد گرز گران که جویان بودش نام و توگنده بود گراگنده گرز و گوینده بود به دستوری شاه دیوان برفت به پیش سپاهدار کابوز تخت همین جوشنن در تنش برگرود همین طب تیغش زمین را بس می بی به ایران سفه برگذاشت به توفید از آواز اون کوف و دهشت همی گفت با من چجویت نبرد کسی کوف برنگیزن از آب بیانان گفت کابوز شاه سرطان نیاید روی شرم را؟ از این دیوه دلت دل چنین خیره شد ز آواز و دیده ها تیره شد ندادند خاسخت لیرانشا شاه، جودان به پش مرد گفتی سپا یکی برگراهید رستم انان بر خسرا آمد ز دوده سنان دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار بدو گفت کابوس این کار توست از ایران نخواهد این جنگ جوست برانگیخت رخش دلاورز جان به چنگن در اون جان جانروبان با آور گرفت چون دیل ماست یکی پیل زیرش دهایی ده به دست اینان را بپیچید و برخواست گرد زبانگش بلرزید دشت نوار به چون جان چونین ای بدشان یفگنده نامت ز گردن کشان همین بر تو بر جای بخشایش هست نهگامه آوردارایش است. به گریت ترا آنگ بود و زاینده در گزاینده بود بدو گفت جویان ای من مشو ز جویان از خنجر سرده رو تشکون به جگر مادرت بگرید بر این جوشن رو بغفرد که جویان به رستم رسید خروشی چشی رجیان برکشید پس پشت اون اندر آمد چو گرد سنان بر کمرگاه اون راست گرد بزر نیزه بر بند زر و زره زر زر را نماندی بند و گره رزینش جدا کرد و برداشتش چو بر باب زن مو بر بی انداخت از پشت اصفش بخواست گهن چرز خون و زره چاکشا دلیران و گردان مازندران شگفتی فرو ماندندندران سپه شد شکست دل و زرز روی برا آمد از آبرگه گفتگو هم جنجوی مازندرانی جویان را همچون مردی که به سیخ و بابزن کشیده باشند با نیزه از کشت عطب برداشته به خاک مرد میتشاند با کشت شدن جویان پادشاه مازندران برای آنکه سپاهیانش از ترس دست به عقب نشینی و مریض نزنند دستور حمله همگانی گانی میدهد و به این ترتیب جنگ دهشتناکی آغاز می شود که بیش از یک هفته به درازا به فرمود سالا مازندران به یک سپاه از کران تا کران زه دو سپه بوق و پوس هوا نیل بون شد زمین آب نوز چو برق درخشنده از تیر میخ همی آتش افروخ از گرز و تیق هوا گشت سلح و سیاح و بنرس زه گونه گونه درفت زمین شد به کلدار دریای قید همی موج او خنجر و گرز و تیر. دوان با تایان چو براب برای سوی قهر گفت گفتی شتاب همین گرز بر برخوند و تر چون باد خزان بارد از بین یکی هفته دلشکر نام بر به رویندر آورده بودن رو از سرگاه ها پرا رسیدن شب ایرانیان با شهزت هزار سپاک شاخ مازندران جنگیدند و کاری از پیش نرمده است به در مانده و بیچاره به درگاه خداوند دست دعا و نیایش بردیاره به هشتم جهاندار کاووس شاه سر برگرفتان کیانی کلا به پیش جهاندار گیهان خدای بیامد همی بود گریان بپا بسان پس بر برخاک رو چون این گفت ای داهور راستگوک توی آفریننده ی داد و پاک بر این نر دیوان بی ترس و باک برا تو پیروزی و فرهی به من تازه کن تخت شاهنچهی پس از نیایش و زاری به درگاه خداوند کلاه خود آهنین بر سر گذاشته به میدان باز باز. با بازگشت پادشاه خروش طبهای جنگی و آسمان برمیدی ایرانیان نیروی تازهی گرفتند که از آن پس به مغفر سرش؟ بی آمد بر نام بر لشکرش خروش آمد و ناله کرنای به جنبی چون کو رستم زجا سپه خود بفرمود تا پیل و کوز ز پشت سپاه اندر آورد توز چون گودرز بازنگه شاوران چون گرگین و رخام و جنگاوران گرازه همین شد به سان گراز درفتی برفراخته ها پیاز چون فرخاد و خراد برزین و گیر برفتند با نامداران نیم همتن به قلبنده آمد نخوز زمین را به خون دلیران بشوز از این میمنه تا بدان میسره به شدگی چون گرد سویه بره چون گودرز کشفاد بر میمنه سلیف و صفح برد و کوس و بنه ز شبگی تا گشت آفتاب همی خون به جوگندر آمد چو آب از چهره بشد شرم و آین و میر همین گوزباری باری سپه باستم در گیر و دار نبان در جستجوی شاخ ماتندران است ناگهان او را در قلب سپاهش یافته از نیزه دارش گرفته به سوی او عصمی کازد و چون به او میرسد نیزه را با همه توان خود در تن شاه مازندران فرو برده او را از پشت زین برگرفته به زمین میاندازد اما با شگفتی تمام شاه مازندران به کمک جادو و افصول ناگهان تبدیل به تکه سنگ و سخری چنان سنگین و سخت و نفوز ناپذیر می شود که هیچ کسا یارای تکان دادن آن نیست از آن سو که بود شاخ مازندران بشد پیر تن با سپاهی گران از آن پست هم کم یکی میزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست یکی میزه زد بر کمربند او. جدا کرداش از جای حیمند او شد از جادوی پنج یک تار کو از این ران بردوبر نظار گروه جنگ به پایان رسیده است هزاران هزار از جادوان و دیوان کشته و زخمی و عصیب شدند سرداران ایران با شگفیه تمام در اطراف رستم و پادشاه سنگ شده مازندران گرد آمدند تیکابوز شاه نیز از راه می دستند همتن خروماند آنجا شگفت سلاندار نیزه به دمدان گرفت رسیدم در اونیز کابوس شاه عبا پیل و کوس و درفش و سپاه برستم چون گفت ای سرفراز چه بودت که ای در بماندی دراز دو گفت رستم چون رزم سخت ببود و برفوخت بیدار بخت مرا دید این شاه مازندران، به گردن براورد گرزگران به رخش دلاور سپردم انان زدم بر کمرگاه و بر سنان گمانم چنان بود که از دلش خون کنون آید از کوه زین برون بر گونه خارا یکی کوه گشت ز جنگ و ز مردی گشت به که کابوس میگوید گمان کردم به نیزه شاه مازندران را کشدم اما او تبدیل به سنگ خارین شده است همه به سنگ نزدیک می کوشش میکنن جا به کنن اما هیچ کسا توان چنین کاری نیست جز رستم که سنگ را بر شانه گذاشته به دامنه کوه و به نزدیک خیمه و خرگاه کیکابوس میبرد و خطاب به شاه مازندران که اینک سنگ گرانی گشته است میگوید یا از درون سنگ به درا یا با تیر و تبر تو را تک تک خواهم کرد دو گفت ریدون که پیدا شوی به گردی از این تنبل و و گرنه به پولاد تیر و به ببرم همه سنگ را سر بسر تو بشنی شد چونگکی پار عرد به سر سربرش پولاد و بر تنش گرد تهمتن گرفت آن زمان دست اوی بخندید و زی شاه بنهاز رود چون این گفت آوردم آن لخت تو ز بیم تبر شد ز جنگم سطور به رویش نگه کرد کابوس شاه نریدش سزاوار تخت و کلا و آن رنج خای توهن یاد کرد دلش خسته شد سر پر از باخت کرد که کاووس دستور می شاه افرونگر و جادوگر مازندران را سرستن جدا ده. آنگاه کسانی را به لشگرگاهو فرستاده تا گنج و تخت و تاج و جواهرات او را به نفر کابرد به لشگرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خاسته هر چه بود ز گنج و ز تخت و ز تاج و کمر از اسب و سلیح و کلاه به زر هر جای چون کو کو برفتن لشگر همه همگروت پکابوس بار دیگر به نیایشگاه رفته یک هفته خداوند را برای این پیروزی بزرگ ستایش میکند آنگاه به سرداران و سپاهیان ایران هرکس به اندازه قدر و قیمتش هدایا و زر و سین میبخشد آن پس بیامد به جای نماز همی گفت با داور پاک راز به یک هفته بود پیش یزدان پاک همی بانیایش بپیمود پیمود خاک و هشتم در گنج خاکر باز ببخشید بر هر که بودش نیاز هفته نیز به شادی و میگساری میگذرد در آن مجلس شادی و سرور به درخواست رستم حادشاه ایران حادشاهی مازندران را به اولاد میسپارد وآنگاه کیکاوس و سپاهیانش به ایران باز با شنیدن خبر رسیدن پادشاه ایران و لشگریانش به پاس با شکوه هرچه تمامتر آنها را پزینده می شد چو در شهر ایران رسید ز گرد صفح شد هوا ناپدی برآمد آمد تا به خورشید جوش زن و مرد شد پیش او با خروش همه شهر ایران بیا راستن می و رود و رامشگران خواستند جهان سر به سر نو شد از شاخ نو از ایران برآمد یکی ماه نو چو بر تخت بنشست پیروز و شاد در گنج های قوان شد <تصفيق> پادشاه ایران انگاه به همه سردارانش هدایای درخور می بخشد تا آنکه نوبت به تهمتن رستم دلیر می رسد به او حدایه خیر بخشیده منشور و فرمان تازهی نوشته حادشاقی رستم بر نیمروز سیستان و زابلستان را تحکیدی دوباره می کند همتن بیامد به سر برکلاه نشست از بر تخت نزدیک شاه سزاوار اون شهریار زمین یکی خلعت آراست با آفرین یکی تخت پیروزه میش سا. یکی خسروی تاج گوهر نگاه یکی دست زربخت شاهنشهی عبایاره و فوق با فرهی صد از ماهرویان زرین کمر صد از مشکمویان بازی با فرق صد از تازی اسپان زرین ستام صد از ترس زرین لگام همه بارشان گیبه خسروی ز رومی و چینی و از پهلوی، ببردن صد بدر دینار میز زرنگ رنگ و ز و ز هر چیز ز یاقوت جامی پر از مشک ناب ز پیوزه دیگر یکی پرگلاب مبشته یکی عهد او بر حریر به مشک و می و اود دست دبیر سپرده به سالار گیتی فروز به نوبی همه کشور نیمروز بر او آفرین کرد کاروز شاه بی تو و کلا دل تاجداران به تو گرم باد روانت پر از شرم و آزرم باد برو بود رستم ببوسی تخت بسیج گذر کرد و بربست رخت رستم آمادی بازگشت به نزد پدرش زال می شود خادشاخ و سرداران و دلاوران ایران در نیان قریب شادی مردم رستم را بدرقه کرده و او با گذر از زیر تاقه پیروزی آزین بندی شده به سوی سیسهان و سان به حرکت در نیاید خروش طبیره برآمد شهر، ز زشادی به هرکس رسانید بر به آزین و بانگ دراگ به گوش آمد و ناله کرنا. بشت رستم زال و بنشست شاه جهان کرد روشن به آیین و راه به زد گردن غم به شمشیر داد نیامت همی بر دل از مرگ یاد زمین گشت پر سبز و آب و نم بیاراست و باغ ارم توانگر شد از داد و از ایمنی ز بسته شد دست اهریمنی بگیتی خبر شد که کاووز شاه زه مازندران بستدان تا جگاه بماندند یک سر زین شگفت که کاووز شاه آن بزرگی گرفت همه پاک با هدیه و بانسار تشیدند سب بردر شخیان جهان چون بهشتی شداراسته پر از داد و آگنده از خواسته تیکاووس با پیروزی از جنگ مازندران بازگشته است او به برکت وجود رستم دلیر و جوان در یک جنگ بیهوده پیروز شده است و آرامش و آسایش و رفاه در همه قلمرو گسترده ایران بزرگ برقرار است دشمنان ایران همچن تورانیان با وجود رستم و زال و دیگر دلاوران جرأت دستیازی به مرزهای پادشاهی ایران را ندارند و همه چیز در قایت خوبی و نیجبختی در گذر است. اما بشر آمیزهای از نیروهای درونی خیر و شر است مجموعی از تزادها در درون هر انسانی امیال بد و خوب در ستیزی همیشگی هستند. آن کس که قادر است نیروهای اهریمنی درون را عقب رنده و در بند نیروهای سازنده وجودش نگه دارد در آسایش و آرامش درون و بیرون به سر خواهد اما آن هنگام که انسان خود را تصمیم افکار و اندیشه ها و خواستهای اهریمنی نفس می کند، آن هنگام که بیشی می و آزمندانه میخواهد همه چیز را به هر قیمتی به دست آورد و به داشته هایش بسند بسنده نمی‌کند آفریننده ناآرامی و کینه توزی و ستیز و در نهایت شر و بدی است و کیکاووس چنین پادشاه در درونش ستیزی همیشگی بین خیر و شر دمی آرام نمی‌گرفت تا آنکه آزمندی و بیشتر خواهیش او را برانگیخت که به سرزن این های تازهی لشکر از ایران به توران و چین میدوند با سپاهیانش به مکران وانگاه آنسود هیرمند زرق میدوند هیچ میروی در برابرش یا رای و ستیز ندارد و همه میپذیرند که به او و ایران با جزاق هستند تنها در بربرستان سرزمینی در آفریقای یک است که پادشاه بربرها در برابر او ایستادگی کرده به جنگ با او برمیخیزد آن پس چنان کرد کابوس رای که بر تخت زغرین به جمعه زجار از ایران بشد تا به توران و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین شد شدا راسته تازره میان ندیدی ایچ بند. بپذروفت هر مهتری باج و ساق نکرد آزمون گاو با شیر تاخد. چون این هم گرازان به بربر شدن جهانجوی با تخت و افسر شدن شه بربرستان بیا راست جنگ زمانه دگرگونه پر شد برند سپاهی بیامد بربر به رزم که برخواست از لشکر شاه با هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد خور از گرد اسبان برندیشه شد ز گرد سپه دیل شد ناپلی کس از خاک دست و انان را ندید به زخمندر همی همین پود به دانسان که برخیزد از باد مرد که بودر دید عمود گران از میان برگشید ست با نامداران هزار عبا نیزه و چیز جوشنگوزار برابید مدری قلب سفا دمان از فس تو حمیره شا تو گفتی بربر نمان به گردندرون نیزه داری سپاهیان بربر به برکت دلاوری های بودر پیر از ایرانیان به سختی شکست خورده از در تسلیم در نیاید بزرگان و پیرانان سرزمین میپذیرند همه ساله به پادشاهی ایران زمین باج و ساب دهند در درخواست آشتیان ها را پذیرفته انگاه به سپاهیان ایران دستور میدهد به سوی مینروز علم روی زال و رستم به حرکت درآید. او به میهمانی جهان پهلوان رستم بی飙رد سفه را سوی زاولستان کنشک به مهمانی پوقر دستان کنشک همین بود یک ماه در نیم رود یکی رود و می خواست یکی باز و <تصفيق> یک ماه شادی و جشن و سرور و بسم و باده گساری سواری و شکار با باز و یوز و پلن شاخ ماجراجوی ایران غرق در سرور و شادمانی و مقرور از پیروزی خواست که به او خبر داده می شود. در مصر و شام فرمان روای بزرگی پرچم شورش و تقیان برداشته و سرسپردگی پادشاه ایران سر باز می سمد پس که کابوس به شتاب برای سرکوب شریک قدرت و فرمان روائیش فرمان می دهد سپاکیان ایران به حرکت دارد که آمد به شاه جهان آگهی که انباز دارد به شاهنشهی بزد کوس و برداشت از نیم روز شادمان شاه گیتی فروزه همه بر سفرها نوشتند نام بجوشید شمشید ها در نیان را زخامون به دریا کشید به دانسو کجا دشمن آمد پدید بی اندازه کشتی به دودر بساز برا چون باد لشگر بطاف همانا که فرسنگ بودی هزار اگر کاز با راه کردی شما همیران خواد در میان سه شهر زگیتی بر این دونه جویند و به دست چپش مصر و بربر به راست زره در میانه بر آن سوک خاست به پیشاندرون شهر هاماوران به هر گوشهای بر سپاهی گران برای رسیدن به قلم شورشیان دریا را که کوتاختره است انتخاب کرده دستور می دهد کشتی فراغامی ساخته شود. پادشاه مصر با دریافت خبر حرکت سپاه ایران با دو پادشاهی همسایه خود بربرستان و هاماوران متحد شده در دشت های بربرستان رو در روی سپاهیان ایران قرار می دهد. کابوس لشکر به خشکی کشید کسان در جهان کوک و صحبا ندید جهان گفتی از کی و از جوشن است ستاره زنوک سنان روشن است بس خود زرین زرین سپر به گردن برآورده رخشان تبر تو گفتی زمین گشت زر روان همین بارد از کی هندی روان ز پر هوا گشت چون سند روس زمین سر به سر تیره چون ز زبانگ طبیره به بربرستان تو گفتی زمین گشت لشگرستان بر آمد از ایران سپه مو و کوس برون رفت گرگین و فرخاد و توس ازان سود که گوگرز کشباد بود چون گیم و چو شیروش و میلاد بود بکندن بر یال اصفان انان به زهراب دادن نوک سنانست تو بر پوهه زین نهادند سر خروش آمد و تا چاخ کبر تو گفتی همین سانگو آهن و گر آسمان برزنین برزنن چنان بود که شد چش پایزگر بباقی شنگر بر لاجه بر تو گفتی هوا جالب آرت هنی به سنگندرون لاله کارت هنی ز چشم سنان آتش آمد برون زمین شد به کردار دریای خون سلشگر چنان شد از ایرانیان که سرباز نشناختند از سرداران و سپاهیان ایران بردشمنان چیرگی یافت یکی پس از دیگری فرماندهان سپاهیان مصر و شام بربر و هاماوران از در تسلیم در آمده هر یک جداگانه پیمان نامی با که بسته می پذیرند به پادشاهی ایران همه ساله باج و خراج دهند. نخستین سپهدار هاماوران بیفتند شمشیر و گرز گران. قمی گشت از شاه زنهار خواست. بدانست کان روزگار بلاست. به پیمان که از شهر هاماوران سپه بد دهد سا و باژ گران از اسب و سلیخ و تخت و کلاه پرستد به نزدیک کاووس شاه چو این داده باشد از او بگذرد سپاهش بر بوم او نسپرد زگوینده بشنید کابوس کهی بر این گفت ها پاس و پی یک سر همه در پناه من پرستنده تاج و گاه من به انسان که کابوس درخواست پادشاه هاماوران را می‌پذیرد، اما سرنوشت بازیهای شگفت‌انگیزی پیش می‌آورد. آورد به شاه هاماوران که پیام تسلیم و سرسپردگی آورده است به شاه ایران آگاهی میدهد که پادشاه او فرمون روای هاماوران دختری بسزی روی به نام سودابه در پس پرده دارد که شاگسته همسری شاه ایران است وزان پس به کاووس پوینده گفت او دختری داغتند در نخفت که از بالاش زیباتر است ز زی مشک سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو چمن زبانش چو خنجر لبانش چو قن بهشت است آراسته پرنگار. چو خرشید تابان به خورنبه ها نشاید که باشد جز از جفت شاه که نیکو بود شاه را جفت ما. دلکه کابوس در سینه میتپره پس ای برگزیده به او میگوید به نزد شاه هاماوران رو و دختر او را برای پادشاه ایران برای من خواستگاری کن بگویش که پیوند من در جهان بجویند گواند کارا اسموده مهان خورشید روشن ز تاج من است زمین پایه‌ی تخت آج من است هر آن کس که در سایه من پناه نیابد از او گم شود پایگاه کنون با تو پیوند جویم همین رخ آشتی را بشویم همین از سپرده تو یکی دختر است چنیدم که تخت مرا در خور است پاکیز تخمست و پاکیز تن ستوده به هر شهر و هر انجمن چو داماد یاوی چو فور قباد دان که خورشید داد تو داد بشد مرد بیدار روشن روان به نزدیک سالار پاها زبان کرد گویا و دل کرد نه بیاراز لب را به گفتار زه زکاووس دادش درود و خرام وزان پس بگفتن چه بود از پیام پادشاه هاماوران با شنیدن پیام خاصگاری فرستاده غمگین می شود او دوست ندارد تنها دخترش از او دور شود اما می اندیشد تا به جنگ دیگری با کیکابوس را ندارد پس به فرستاده کیکابوس می گوید پادشاه ایران در جنگ ثروت و گنجهای مرا گرفته است فرزندم را نیز می خواهد پس من دارایی ارزنده من جانم را نیز بگیرد با این همه درخواست او را میپذیرم. چون این گفت با مرد شیدین سخون سر نیز این آرزو را نبند همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه دیگر ندانیم نیز مرا پشتگرنی بود از خواسته به فرزند بودم دلاراسته به زین سپس جان بماند همی دگر ایران ستانت همی سپارم به دو هرچه خواهد کنون نتابم سر از رای و فرمان برون آدشاه هاماوران انگاه دستور می دهد از فرستاده که پذیرایی پذیرایی کنه و دخترش دخترش سودا فرا میخواند خاند تا از این خبر دهشتناک او را آگاه سازد اما با گیفتگی تمام در به سوداوه این پیوند و ازدواج را سخت میپسنده. همین گشت و سوداوه را پیش خواد. زکاوس با او سخن ها بدو گفت از این خسرو رازم ساز که هست از مهی و بهی بنیاد بر چرگوی آمدست است. یکی نامه برخواستاری به دست و می‌خواهد از من که بیکام من ببو دل و خواب و آرام من همین یا هوای تو چیست؟ بدین کار بنگر که رای تو چیست؟ بدو گفت سودا به؟ در چاره نیست از او بهتر امروز قمخاره نیست کسی کوب و بچه هیار جهان بر بوم خواهد همی از نهان سه با او چه باشی دوشم کسی نشمرد چادمانی به قم به دانست سالار هاماوران که را آن نیامد گرم رستادی شاه را پیش خاند بازان نامدارانش برپردشان ببستند کابین برای این خیش به دانسان که بودان زمان این و کیش شاه هاماوران در نبود که کابوس رستادی او را فرا خانده به آین و باور و کیش خیش دخترش را بهعهد و ازدواج او درمیآورد پادشاه خشمگین و خسته دل به یک هفته جهیزیه و اسباب سفر دخترش سودابه را فراهم کرده او را همراه چهل کالسک و سیصد پرستنده و كنیز هزار اشدر و هزار اسب و در. همه بارشان دیبا و درهم به نزد کیکاووس میفرستد پرسته کیکاووس عروس خود را پذیره شده در همان نگاه اول دل دین به او می بازه. نگه کرد کاووس و خیره به ما به سودا و برد نام یزدان بخلی. یکی انجامن ساخت از بخردان ز بیدار دل پیر سرمود بدان سزادی و را جفت خیش ببستند کاوین براین و کیش آری سودابه دل از پادشاخ ایران ربوده به همسری او در می آید. اما شاه خاماوران در پی انتقام است از این رو چون هفته‌ای می‌گذرد به به نزد کاووس فرستاده او را به میهمانی در پایتخت خاماوران شهر شاه فرا می‌خواند شاه خاماوران در پی آن است که بی جنگ و ستیز کی و همراهانش را گرفته و اسیر کند سودا با شنیدن خبر دعوت پدرش به کی کاووس می‌گوید پدرم خیال ناخوشایندی در سر دارد از رفتن به این میهمانی بپرده اما که کاووس مقرور سخنان همسرش را باور نکرده با بزرگان و سرداران سپاهش به شهر شاخه میرود قمی شد دل شاخه هاماوران زهرگونهی چاره جزدندران چون یک هفته بگذشت هشتم پگاه فرستاده آمد به کاووس شاه. گر شاه بیند به مهمان خیش بیاید حرامان بیوانه شود تخت ها ماوران چو بر شود شهریار بلند به گونه با او همی چاره جوست نهان بند او بود رایش درست مگر شهر و دختر بماند به دور نباشد بر سر یکی باش جوی بدانست سوداوه رای پدر که با سور پرخاش دارند بسن به کاووس که گفت این رای نیست تو را خود به هاماوران جای نیست نباید که با سور جنگ آورن تو را بی بهانه به چنگ آورد. سه من است این همه گفت و گوی تو را زین خرامند اندوهایت برو سوداوه گفتار باور نکرد که کم داشت زیشان کسی را به ما. بشد با دلیران و گنداوران به مهمان سوی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاه نام همه از در سور و آرام و کام بدان شاه بودش سرای نشست همه سر به سر شهرش آزین شازین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز یک هفته شاه خاماوران چون خدمتگذاری پادشاه ایران و همراهانش را شاهان پذیرایی می کنه. اما در این مدت با بربرها از در گفتگو در آمده بران می تا بایاری آنها شاه ایران و سردارانش را قابل گیر کند همی بود یک هفته با می به دست خوش و خرم آمد جای نشست شب و روز بر پای چون که میان بسته سالار هاماورانی بر این گونه تا یک ایمن شدن ز و چراو و نهیب و گزن بر این گفته بودند و آراسته سگالیده و جای برخواسته ز بربر بر این لشگر آگه شدن بزودی زودی همه سونگ درگه شد شبی بانگ کوس آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن ز بربرستان اندر آمد سپاه به هاماوران شادل خفتشا گرفتند ناگاه کاغوس را چون بودرز و چون گیم و چون توس را بزرگ بار دیگر ما را پند میدهد ایگانگانی را که با تو پیوند خونی و خیشی ندارند یکسره سره باور مدار گاه پیش میآید آید که همخونان ما نیز مهرس ما بریده که زندگی ما را دگرگون میکند چه رشق و حسادت در نهاد همه ما جای دارد چه در این مردم شعف دید؟ چه دانی تو ای کار این کار دانند در چو پیوسته خون نباشد کسی، نباید بر او بودنی من بسید. بابد نیست پیوسته خون که مه ببرد ز تو تا بگردد. چه؟ چون مهر کسی را بخواهی به سود، بباید به سود و زیان آزمد. شاه ها ماوران که کاووس را در دشی کوهستانی به زندان میفرن. انگاه پوشیدگان حرم تنی چند از زنان حرم سرایش را به نزد دخترش سوداوه فرستاده تا او را به نزد پدر آورد. سوداوه فرستادگان پدرش را سگان خطاب میکنند و گریان با آنان میگوید شما در برابر که کاووس ناجوان مردی کرد. چرا آن هنگام که در میدان جنگ لباس رزم بر تنداشت یا رایه به بند کشیدنش را نداشت از آنها و پدرش میخواهد که او را نیز در کنار همسرش به زندان افکنند و بدینسان شاه هاماوران دخترش را نیز در کنار که به بند میکشد رسودا و, و پوشیدگان را بدید به تن جامعه خسروی بردارید به مشکین کمندن در آویخ چنگ به فندوق دو گل را بخون داد رنگ به دیشان چنین گفت این کار کرد ستوده ندارند مردان ورد چرا روز جنگش نکردید بند که جامش سره بود و تختش سمند سفهدار گودرز و چنگی و توز دلتان از آوای گوز همین تخت زفرین کمیت کنید پیوستگی دست کوتح کنی رستادگان را سگان کرد نام سمن کرد پرخون از آن ننگونا جدایی نخواهم سه کابوس گفت وگرچه بود را گفت چو کابوس را بند باید کشید مرا بیگونه سر باید برید به گفتند گفتها رو با خودم براس شدش سر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک شوی جگر خسته از غم به خون شسته رو نشستش به یک خانه با شهریا پرستنده او بود همو قمگسا آری اینک پادشاه ایران به همسرش در سرزمینی بیگانه در زندان به سر میبرند بار دیگر به خاطر آزمندی شاه ایران بخت از ایرانیان روی گردانده است سپاهیان که کابوز پراکند راه بازگشت به ایران را در پیش میگیرند. بخت و تاج ایران تهی از پادشاه است. بار دیگر دشمنان ایران فرصت را برای تاخت و تاز به ایران زمین مقتنم میبرن. از دشت نیزه و افراسیاب و تورانیان از آن سوگ جیهون به سراغ تخت و تاج ایران می و با هم برخورتهای خونینی در خاک ایران دارند چو بسته شدان شاه هینجور سپاهش به ایران نهادند هم شد پراکنده در جهان آگهی که کم شد سپالیز سر بسند بر تخت زهرین شاه به جستن گرفتن هر کس کلا زه ترکان و از دشت نیزه بران زهر زه سو بیامد گران گران گشن لشگری ساخ افراسیاب برامد سر از و آرام خواه به جنگ بود لشکر سما بدادن سرخاز بخه کلا از ایران برآمد زهرس سو خروش شد رام دیتی، پر از جنگ و جوش این تنین صدای فردوسی است که از برای قرون به گوش میگستد که میگوید در این دنیای گذران و سپنجی همه در پی آزمندی و بزن خاکی جز رنج بخی نمیدار حالان که جهان با نیگ و بدش میگذرد و مرگ همه را سرانجام انجام شکار چنین است رس به سرال سفنج. همه از خیه آز و رنگ سرانجام انجام بگذرد و بدش بگذارد شکار است مرگش همی بشید به دنبال جنگ های خونینی افراسیاب تازیان دشت نیزه بران را شکست داده ایران زمین را عرصه تاحت تازه هیچ قرار دید بخشی از و سرداران سردرگم و بیفرمانده ایران خود را به زابلستان و به نظر رستم رسانده و از گرفتاری کیکاووس و حجوم تازیان و تورانیان به او آگاهی میدهند و به او میگویند ایران کنام و لانه شیران و پلنگان بیگانه شده است و تو که از بیگانگان شیر نخورده ای باید ایران ما را بریاد رست باشد ما رازه بطه ها تو هستی تنام چو کم شد سر و تاج کابوس دریق است ایران که بیران شود کنام پلنگان و شیران شود همه جای جنگی سواران بودی نشستنگه شهریاران بودی کنون جای سختی و جای بلاست نشستنگه تیز چنگشده هاست کسی کس پلنگان نخورده است شیر بدیم رنج ما را دست تو چشما بزن دلش گاش پر و جان پر ز درد چنین داد پاسخ من با سپاه میان بستم جنگ را کینه خوا چیاوام ز کابوس شاه های هی کنم شهر ایران ز ترکان توهی دیگر سرنوشت نجات ایران را به کف پرپدرت رستم می سپرد. رستم پس از آنکه که از چگونگی گرفتار شدن کیکابوس آگاه می شود تمامی سرداران و سپاهیان پراکنده در سراسر ایران را به زابل پرا میخواند آنگاه نامه یک سر سرزدنش و نکوهش و تهدید، به شاه هاماوران نوشته به فرستادهی می سپرد تا به هاماوران برد رستم در نامه خود به شاه هاماوران می نویسد با آنکه شاه ایران با تو پیوند خیشی بسته بود به او خیانت کرده ای. و هر روی اگر شاه ایران رها شود تو از مرگ رها شده ای گرنه آماده جنگ و نبرد با من باش بر شاه ایران کمین ساخت پیوستگی در بدن داستی نمردی بود کار جستن به رنگ نرفتن به رسم دلاور پلنگ که در بعض هرگز نسازد کمین اگر چند باشد دلش برزکین اگر شاه کابوس گردد رها ز چنگ و دم اجده ها بیارای جنگ مرا به گردن بپیمای هنگ مرا آدشاه آماوران در پاسخ نامی رستم جسورانه در نامی به وی می نویسد هرگز روی صحرا و زمین راه نخواهد رفت تونیز اگر به جنگ منایی سرنوشت او در زندان بی در انتظارت خواهد کابوس کی به هامون دگر نسترد نیست پی. تو هرگه که آیی به بربرستان منم برکشیده به پیشت اینال همین بند و زندانت آراست هست اگر رایتین آرزو خواست هست بیایم به جنگ تومن با سپاه بر این گونه جوییم آین و راه نستم با دریافت پاسخ گستاخانه شاه هاماوران با سپاهیان و سردارانش از راه دریا خود را به مرزهای هاماوران رسانده بر سر راه همه چیز را در آتش حشم خود می سوزاند تا بشنی پاسخ جب پیل در دلیران لشکر شدن انجمن سوی راه دریا بیامد به جنگ چو بر برمود ره بادرنگ به کشتی و زورق سپاهی گران شد تا سر مرز تاماوران به تاراج و کشتن دیار آستان از آزرم دلها بپیداستن برا شرفیش گرد آمد خروش جهان آمد است خون و قارت به جوش با رسیدن رستم و سپاهیانش شاه خاماوران شتاب زده در نامه ای از پادشاهان مصر و بربر می خواهد که به او بپیوندند فرمانروایان روایان مصر و بربر پیشنهاد شاه خاماوران برای اتحاد و یگانگی در برابر ایرانیان را می پذیرند. چون نامه به نزدیک ایشان رسید که رستم بدین دشت لشگر کشید همه دل پر از بین برخواستند سپاه دو کشور بیاراستند دهادن سرسوی هاماوران زمین کوه گشت از کران تا کران سپه کوه تا کوه صفت برکشید تو گفتی که خرشی لشگر کشید با شنیدن خبر پیوستن سپاهیان مصر و بربر به سپاه شاه خاماوران بر جان که شاه ایران که اینک در دست دشمن اسیر است بیناک شده به او پنهانی پیام میفرستد که نگران جان اوست میترسد اگر به سپاه مشترک دشمن حمله برد آنان ناجوان مردی کرده همانگونه که افراسیاب نوزر را در بند و اصارت به خاک و خون خونکشی شاه خاماوران نیز خونه که کاووس را بر زمین بریزد رستم به شاه ایران پیام می دهد پیروزی بر دشمنان و پادشاهی بر سرزمینان ها اگر به بهای آزار پادشاهی ایران تمام شود برای او کمترین ارزشی ندارد چرستم چنان دید، نزدیک شاه نهانی برافکند گردی به راه چاه سه کشور بیا راستم، به رسم من از جای برخواستم اگر کین را من به جنبم زجای، ندانم سر را بدین چینز پای نباید که از این چین به تو بد رسد که کار بد از مردم بد سزن مرا تخت بربر نیاید به کار اگر بد رسد بر تن شخیان به کاووس پادشاه اسیر ایران که امید به خداوند بسته است در پاسخ پیام رستم به او پیام می‌دهد نگران مباش تا بوده چنین بوده گاهی شهد کامیابی و گاهی زهر ناکامی و نگران که خداوند پناه و نگهدار من است تو با رخش خیش بر سپاه دشمنان ایران روز را تیره گردان رستاد پاسخ من بیشه زید از بحق من شد سمید. چون این بود تابوت گردان سپر که بانوش زهر است و با جوش می و دیگر که دارنده یار من است پناه است و مهرش حساب من است تو من رخش رخشنده را ده نان بیارای گوشش به نوک سنان از ایشان یکی زندن در جهان مماناش کارا در نهان رستم از پادشاه ایران فرمان نبر دریافت کرده است سپاه ایران آمادی نبرد است. درفش در شکیانی بر و رستم در کنار پرچمدار سپاهش در حالی که رو در رویش سپاه سپادشاه آمادی نبرد هستند خطاب به سپاهیان ایران میگوید اگر ناگزیر شدید از مشگان تا نیز تیر ساخته به سوی دشمن انداز از پزونی سپاهیان دشمن نهراست. سپه برد چلشگر به هامون کشید، سپاه سشاغ سکشور بدید، چون گفت با لشگر سرفراست. از تیگر مشکن مدارید باز، سر باره بینید و یال و انان، دو نهاد نهاده به نوک سنان، اگر ست هزار و ما، صد سوار بزونی لشگر نیاید به کار. خونینی آغاز می در این نبرد رستم خود شاه مصر و شام را اسیر ساخته و دلاور دیگر ایرانی گراز شاه بربرستان را اسیر می کند برا آمد درخشیدن تیغ و خیشت تو گفتی هوا بر زمین لالکت زخوندهش گفتی که رود زم هست نرزن یه پیر رستم بریده ز سو سر ترگ دار سراکند خبدان همه دشت و قار و هم تن مران رقش را خیس کرد ز فرو ماجه پرهیز کرد همی تار اندرههٔ شاه شار زیانداخت از باد خممی به خام چنانش به هلغنگر آورد گرد كه گفتی خماا در میانش بسر زین برگرفتش به کردار دون که توزن به زخمندر آید به دو بی بهرام دستش دستش ببست گرفتار که نام بردار شخص زخون خواب گلگشت حامون چکو زبست کشک افغان از هر گروه شه بربرستان به چنگ گراز گرفتار شد با چهل سرخراست پادشاه شاه نیز که شکست و مرد را روی پوست تمش احساس می خوند. از رستم تقاضای آشتی کرده و او پیام می که بدون هیچ گونه شرطی پادشاه ایران و همراهانش را آزاد کند رستم پیشنهاد تسلیم شاه خاماوران را نیز میپذیرد شاه شکست خورده خاماوران می رنگ که کابوس پادشاه ایران و دخترش سودابه ملکه ایران را از بند و زندان رها میسازد و آنان را به اردوگاه ایران میفرستد بدین سانگ سهپادشاهی بزرگ آن روزگار مصر و شام بر و هامآوران به سرزمین های تحت فرماندوای ایران پیوسته هر کدام به نشانی تسلیم هزاران سپاهی سوار و پیاده در اختیار فرماندوای کل سپاه ایران زمین قرار میدهند اینک سپاه ایران و که کابوس از 300 هزار میشی و بازونی گرفته است. سپاهش بازون شد ز سی هزار زرهدار و برگستوان بر سوار برو انجمن شد ز بربر سوار ز مصر و زهامآوران سد حزار برآمد گران لشکری بربری سواران جنگاور بر لشكری پیکابوس آگاه است که تورانیان در نبود پادشاه و سپاهیان ایران پس از تار ومار کردن تازیان دشت نیزه بران ایران زمین را پهنهٔ تاخت و تازه خود قرار دادند پس به پادشاه یکی دیگر از سرزمین های تحت فرمان ایران قیصر روم نیز نامه ای نوشته از او خواهد بخشی از سپاهیانش را در اختیار فرماندهی سپاه ایران قرار دهد رستاده شد نزد قیصر زشاه سباری که اندر نبردید را بفرمود از نامداران روم کسی کوب نازد به مردی به بوم جهان دیده باید اناندار و بس سنان و سفر باید اشیار و بس چون این باید از مرز روم که آیند با من به آباد بوم عبر پیروزی رستن بر سپاد شاقی مصر و شام بربرستان و هاماوران در دنیا روز به سرعت باد از سرزمینی به سرزمین دیگر میرسند تازیان دشن ایران ترسیده از خشم رستم به او و شاه ایران نامهای مینویسند و ادعا میکنند اگر در نبود پادشاهی ایران به ایران زمین سپاه آوردهند تنها و تنها برای پاسداری از ایران زمین و ایستادگی در برابر سپاه افراسیاب و تورانیان متجاوز بوده است و اینک آمادهاند در کنار سپاهیان شاه ایران با افراسیاب تورانی بجنگد گرد. اکاووس از پیشنهاد آنان خوشنود شده به افراسیاب نامه نوشته و او پیشنهاد می کند هرچی زودتر خاک ایران را ترک کرده به آن سوی جیخون گردد. ایران به پرداز و بیشی مجود سر ما شد از توپرست گفته گوی برا شهر توران بسنده است خد که خیره همی دست یازی به بر آزونی مجویر شدی بی نیاز که درد دارد پیش و رنج دراست را کهتری کار بستن نکوست نگه داشتن تن تنخیش پوست ندانی که ایران نشسته من است جهان سر به سرزیر دست من است حلنگ جیان گرچه باشد دلیر نیارت شدن پیش چنگال اما افراسی ها پلنگی نیست که از میدان جنگ شیری چون که کاووس بگریزد و بار دیگر خیال رودر روی با سپاه ایران را در سر دارد پس به که کاووس می نویسد تو اگر ایران زمین را سرزمین پادشاهیت میدانستی به مازندران چه نیازی داشتی افراسیاب می نویسد به دو دلیل ایران زمین از آن من است. یکیان که تور پسر فریدون نیای من است و دیگران که این من بودم که ایران را از چنگ تازیان دشت نیزه بران به درآوردم. آوردم. تو اگر سزا بودی ایران همان نیازت نبودی به مازندران. کنون آمدم جنگ را ساخته درفش درفشان برافراخته ایران ایران دروی مراست به باید شنیدن سخنهای راست که تور فریدونیای من است همه شهر ایران سرای من است و دیگر به بازوی شمشیر زن توحی کردم از تازیان انجامن به پیغام نسفارم این تاج و تخت مگر تیره گردن زمار روی بخت بار دیگر ایران زمین زیر صومه اسبان سپاخیان افراسیان میلن زد بار دیگر سرنبشت سپاهیان ایران و توران را رو در روی هم قرار داده است بار دیگر رستم دلی به جنگ پلنگ خونریزی چون افراسیاق خواهد رفت بر ایران زمین چه خواهد رفت اگر این راوی را عمری باشد این روایت را ادامه خواهد داد